تا چند ملامت کنی ایزاه خام ما رند خراباتی و مستیم مدام، تو در غم تصدیح و ریاب و تلبیس، ما بامه و معشوق مدامیم به کام. با نفس همیشه در نبردم چکنم، کنم؟ از کرده خیشتن به دردم چه چکنم، گیرم که زمن من در گذرانی بکرم، زن شرم که دیدی که چکردم چه چه کنم؟ جانا من و نمونه پرگاریم، سرگرچه دو کرده ایم، یک بر نقطه روانیم، کنون دایره وار، تا آخر کار سر به هم بازاریم. چون نیست مقام ما در این دیر مقیم، پس بیمه و معشوق این عظیم، کیز قدیم و محدثی مرد حکیم، چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم.